دودهمین عادت ضد تنبلی. پیشرفت و موفقیت های خود را پیگیری کنید. بهانه که از میان می رود. مهم نیست. پیش می آید که ما کارهایمان را به دلیل نداشتن انگیزه به تعویق بیاندازیم. وقتی که به نظر می رسد به این زودی ها به جایی نمیرسید هیجان و انگیزه داشتن بسیار دشوار است. یک راه حل ساده این است که پیشرفت خودتان را در پروسه ی هر کاری که انجام می دهید پیگیری کنید. پیتر داکر این مطلب را در یک جمله چونین بیان کرده است. هران چیز که قابل سنجش باشد را می توان مدیریت کرد. برای پیش بردن هر چیز در زندگی، لازم است که شما عادت پیگیری روزانه پیشرفتهایتان را در خود پرورش دهید و به دین ترتیب هرگاه با بی انگیزگی مواجه شدید می توانید به موفقیتهای گذشتهتان نگاهی بیاندازید و ببینید که چقدر در راهتان جلو رفته اید. این کار سودی دوچندان دارد. نخستین که شما انگیزه لازم برای ادامه دادن راهتان را به دست می آورید. همه ما دوست داریم که از موفقیت های کوچک لذت ببریم. با پیگیری موفقیت های کوچکتان در راه دراز رسیدن به هدف اصلی شما عادت پیروزی مداوم را نیز در خود ایجاد می کنید. و در این هنگام است که دیگر از ادامه کار دست بر نخواهید داشت زیرا می ترسید که زنجیره پیروزی های کوچک مداوم از هم سلد و لذت از آن نیز از میان برود. دوم آنکه شما می توانید از تجربیات گذشته خود درس هایی بیاموزید. همچنان که هفته ها و ماهها از پی هم می آیند و میروند، فراموش کردن اینکه چقدر و چگونه در راهتان پیش آمده اید آسانتر می شود. با پیگیری موفقیت‌هایی که در طول راهتان به دست آورده اید، همیشه می توانید به پشت سرتان نگاه کنید و از آنچه در گذشته کسب کرده اید، درس‌های جدید بیاموزید. برای مثال فرض کنید که شما می‌خواهید متوسط تعداد کلماتی که هر روز می‌نویسید را بالاتر ببرید. با پیگیری موشکافانه و دقیق شرایط نوشتنتان می توانید الگوهایی را در پرکارترین روزهایتان که بیشترین تعداد کلمات را نوشته اید پیدا کنید. بدین ترتیب می توانید شرایط خاصی که برای بیشتر نوشتن لازم دارید را شناسایی کرده و آنها را هر روز برای خودتان محیا کنید. عادت پیگیری را در همه عباد زندگیتان از جمله مواردی که در ادامه می آیند پیاده کنید. چه مقدار زمان در روز را واقعاً صرف انجام کار می کنید؟ چه غذاهایی می خورید و میزان کالری آنها چقدر است؟ زمان و شرایط برنامه ورزش روزانه از چه قرار است؟ درصد اشتباهات کاری شما در یک روز در هر روز چند ساعت وقت بر روی یک پروژه جانبی یا شخصی میگذارید؟ سوابق مالی از قبیل بدهکاری، سرمایه گذاری و پسنداز در حقیقت هر آنچه شما در زندگیتان انجام میدهید باید تا حدودی قابل پیگیری باشد تنها با ثبت دقیق آنهاست که شما میتوانید از هر تجربه درسی بیاموزید و انگیزه برای ادامه انجام عادت‌های روزانه‌تان به بدست آورید اجرای این عادت پرورش عادت پیگیری پروسه است که به زمان احتیاج دارد و یک شب به دست نمی آید. تبدیل این پروسه به عادت روزانه به این ترتیب است. 1. هر کدام از اهداف دال سین، دال، میمزه که برای خود تعیین کرده اید را در نظر بگیرید. 2. راهی برای کمی کردن این اهداف و تبدیل آنها به فعالیتی روزانه پیدا کنید. مثلا هدف انتشار یک کتاب تا یکم ماه نوامبر می تواند به صورت نوشتن هزار کلمه در روز درآید. 3. ازمتان را جزم کنید که این فعالیت را رو هر روز انجام دهید. 4. تمام موفقیت هایی که در اجرای این عادت به دست می را ثبت و ضبط کنید. اپلیکیشن های مخصوص این کار بر روی تلفن های همراه هوشمند وجود دارند که می توانید از آنها استفاده کنید. 5 حداقل یک بار در روز آنچه ثبت و ضبط کرده اید را بروز کنید. خود من هر شب قبل از خواب مدتی را برای این کار کنار گذاشتم. این کار حد اکثر به پنج دقیقه زمان نیاز دارد. 6 یک یادآور برای مرور موفقیت‌هایتان در مسیر رسیدن به اهداف دال سین دال میمزه به برنامه مرور هفتگی و ماهانه تان اضافه کنید. عادت پیگیری موفقیت‌ها در نگاه اول به نظر کار مشغله و می می‌آید. البته این کار به صرف مقداری زمان و تلاش نیاز دارد. اما با اجرای آن در خواهید یافت که این عادت انگیزه شما برای رسیدن به اهدافتان را تأمین می می‌کند و همچنین به شما کمک می‌کند تا از تجربیات روزانه‌تان درس بگیرید.